زهد چیه؟ حالا بعد باز میرسیم بهش اجمالا دارم ارز میکنم دل به دنیا نبستن کسی دل به دنیا میبنده به هر میزانی که دل به دنیا بسته به همون میزان از لغا رب محروم میشه چون از حکمت محروم میشه از صبات حکمت در قلبش محروم میشه ایوب دنیا رو نمیتونه بفهمه سالم از دنیا خارج نمیشه تو همین دنیا میلوله دست پا میزنه طرف ممکنه حتی تو بادی عرفان. خیلی حرفه ایندی خیلی درد آغا. از همه چی چشم میپوشه از پول چشم میپوشه از مثلا لذت های گوناگون قریضی چشم میپوشه ریاضت میکشه انقدر این در اون در میزنه استاد پیدا کنه که راهنماییش کنه همه اینا رو انجام میده ولی تهیدل انگیزش چیه؟ شهرت پیدا کنه به عنوان سالک صاحب کرامت پس این دنیاست هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزاند دهن. این نشون میده مثل آقا وضو میگیریم به قصد اینکه خنک بشیم اصلا این وضو چیه باطل وضو میگیریم برای قربت الله حالا ممکنه هوا گرم خونکی هم حاصل بشه خب شد سلوک الی الله دارم که کرامت پیدا کنم اصلا سلوک الی الله نیست توحین به الله من الله ابزار قرار دادم برای اینکه کرامت پیدا کنم ولی اگر قصد سلوک الالله باشه کسی واقعا سالک الی الله بود کرامت نداره کرامت برای سالک الله اصلا به نظرش هم نمیاد توجهش نمیکنه لذا اون نگرش زاهدانه رو میخواد نگرش زاهدانه یعنی اینا براش اصلا مطرح نباشه وگر نمیگه آقا چه ذکری بگم که این قدرت را پیدا کنم اه؟ از شما هدفتون از ذکر این قدرته چه ذکری بگم این قدرت رو پیدا کنم چه دعایی بخونم که به این مقام برسم پس شما که مقام میخوایی که اگر بگی چه کار کنم خدا مرا بپذیرد چکار کنم عبدالله باشم چکار کنم خب هرچه خدا خواست خدا خواست کرامت داد بده خدا خواست گمنام باشی گمنام باش خدا خواست تو جامعه حتی شاید حکمت بر باشه مثل حضرت ایوب پیغمبر چنان مطروط خلق بشی که تو رو تو جامعه خودشون راه ندن مگه جناب ایوب و پیغمبر اینجوری پیغمبر خدا میخواد حضرت سلیمان اونجوری به درخشه خدا میخواد حضرت ایوب چه فرقی بین سلیمان و ایوب در برخورد با خدا بود نه سلیمان میگه خدایا چرا این معموریت دادی من اینقدر معمور بشم تو جامعه به کار دنیای مردم برسم میگه پسندم اون چرا جانان پسندند نه حضرت عیوب عرض میکنه خدایا این چه گرفتاری بود برای من پیش آوردی تازه یه جا که دلش خیلی به درد آمد اونجایی که همسرش اومد توی شهری که ها ایوب به این مردم خدمت کرده گرسنه هاشون سیر کرده به فقراشون ثروت داده حالا تو امتحان الهی اینجوری شده دید مجلس عروسی غذای گرمه اومد در زد یک کمی غذای گرم میدید برای ایوب پیغمبر ببرم می همسر عیوب پیغمبره گفتن ما این عروس هم رو آرایش کنیم موهاش خیلی مو های مناسبی نیست شما یه تیک از موات ببر بده ما برای مثلا آرایش کار حرامی هم نبود که رو به خاطر عیوب پیغمبر همسر حاضر شد یکی از موهاشو رو بده با اونا غذای گرم تهیه کنه. وقتی این قض به وضعیت عیوب رسی دلش به درد آمد. حالا که دلش به درد اومده تازه چی میگه به اننی منی از انترحم و رحیم نمیگه خدایا چرا که رب نیم از سنی از زور خدایا خیلی دیگه درد داره بالا میره اینجور دارن با من عمل میکنن ولی انتر همون راهیم اما شکایت نمیکنه نمیگه چرا داره خبر میده گله نمیکنه خدا باید مطرح باشه از من